اول اینه که با آدم که موفده به ترک گناهند رفاقت و معاشرت کنه از اینا منتقل میشه به انسان ترک گناه اما به اکس اگر با آدم گناه خار رفاقت کنه، ارتقاب گناه از او منتقل میشه به این خدا در گناه را آیه فرستادی مساله رو برمنای کرده که الاخلائی و مردن بعد هم لبعدن ادو و علم منتقین روز قیامت همه دور ساورا با هم دشمن میشن الا ادمایی که در خط تقوا با هم دوست بودن اونا از این که با هم رفاقت کردن خوشحالن یا نتیجه رفاقت با اهل این شد که منم تقوا رو مراد کردم امروز وارد بهش میشن بنابراین اولین اثر مل معاشرت با اهل تقوا است و اجتناب از معاشرت با آدم گناهکار و گسیات کار